به سوی نور قسمت دوم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم با قسمت دوم از مجموعه گفتگوهای صوتی به سوی نور در خدمت شما دوستان گرامی و جناب آقای عدل محمدی هستیم سلام عرض کنم خدمت شما روز شما بخیر سلام علیکم و رحمت الله در خدمت شما و دوستان محترم هستیم خیلی تشکر از شما ما در بخش اول یعنی قسمت اول گفتگوهای صوتیمون با استناد به آیات قرآن کریم و آیات تورات، آیات زبور و آیات انجیل به همه دوستان و همه شنوندگان نشون دادیم که فعل صدا زدن، خواندن و دعا بردن به سمت احدی به غیر از الله فعل باطل و حرامی است. اما کسانی هستند که به جای اینکه تسلیم پیام آیات قرآن و کتب من قبل باشند میان این آیات رو کتمان میکنند و در عین حال با استفاده ابزاری و تحریف کردن یکی دو تا آیه در قرآن کریم مانورری رو ایجاد میکنند تا دین رو به اون سمتی که خودشون میپسندند منحرف بکنند. از آن جمله تشیع و تسنن هستند کسانی که میان و آیه 169م از سوره آل امران رو مورد استفاده ابزاری قرار میدن ترجمه آیه 169 سوره آل امران رو من قرائت میکنم خدمت دوستان و کسانی را که در راه الله کشته شدند مرده مپندار بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی میخورند خب شیعه و سونی میاد این آیه رو مورد استناد قرار میده و میخواد نتیجه گیری بکنه بگه بله این کسانی که ما میخانیم دعا میکنیم به فریاد صدا میزنیم طلب حاجت و شفاعت و مدد و غیر و ازشون میکنیم اینا مردی نیستن اینا زندن در حالی که حجم کسیری از آیات الهی که اساسا خواندن غیر الله رو امر باطل و حرامی میدونه رو کتمان میکنن من از شما درخواست دارم جناب جنبای عادل محمدی که پیرامون آیه 169 سوره آل امران برای ما کمی توضیح انایت بفرمایید در خدمت شما هستیم استدعا می کنم برادری گرامی ببینید جناب آقای علی گرامی برخورد خودکاران مذهبی دکانداران دین متولیان دین شرک و کف با آیات قرآن چنین برخورد التقاتی است التقاد در معنای لغوی یعنی خوش چینی پرداختن به یک آیه به یک واژه و کتمان آیات دیگه از نظر شریعت عالی اسلام یعنی تحریف الله تعالی در سوره بقره آیه 85 میفرماید آیا ایمان میآورید به بخشی از کتاب و کتمان میکنید بخشی دیگری رو ببینید برادر گرامی سوریه عالی امران آیه 169 رو کردید می میبینیم که عزیزان تشیع ما اما و بعضن عزیزان تسنن ما مذهبیون ما این آیه رو ملاخ قرار میدهند و میگویند که بله در این آیه اشاره کرده الله میفرماید اونهایی که در راه خدا کشته میگه اونها رو مرده نپندارید اونها زنده هستند نتیجه که میگیرن بله میگویند بله امامان ما هم چون در راه الله اینا کشته پس زنده هستند و ما میرویم سر قبر اونها از قبور اونها حاجت میخواهیم شفاعت می خواهیم مدد می خواهیم استعانت می خواهیم برادر گرامی در انتهای همین آیی 169 سوری آل امران اللا می فرماید این در رب بهم این در رب بهم یرزقون الله نمیفرماید فرماید این در قبرهم یرزقون توجه کنید برادر گرامی رو که جالبی بود درسته همینطوره الله میفرماید این در ربهم رب خب حالا ما میخوایم ببینیم که این این در ربهم رب کجاست آیا در دنیای فانی است در دنیای زودگذر است یا در دنیای باقی سرای جاوید من دو سه تا آیا، البته آیات متعددی در قرآن کریم هست که پیرامون عبارت این در ربهم رب میاد توضیح میده مشخص میکنه برای ما که این این در ربهم رب در سرای است. سوری قلم آیه سی رو نگاه کنید دوستان گرامی سوری قلم آیه سی و چهار. بله بله الان میفرماید فرماید همانا متقین یعنی پریزگاران نزد پروردگارشان بیشتهای نعمت هاست نزد پروردگارشان دوباره بله بله, بله. این در ربه اینجا توضیح داده میشه دیگه خب این در ربه کجاست حالا سوری آل امران آیی 127 رو نگاه کنید برادر گرامی سوری آ لهم دار السلام این دربهم دا این دار السلام کجاست این دار السلام این ده قبرهم است یا نزد پربردگانشان در بهشت در جنت در فردوس برین در دار السلام درست هم. باز من آیه رو برادر گرامی اشاره میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی سوره آل عمران آیه 21 بسیاری از پیغمبران الهی بسیاری از دادگستران بسیاری از کسانی که معتقد به آزادی و عدالت بودند اینا در راه الله کشو شدند درسته اینجا اشاره میکنه من مثلا قبردم سوریه آل امران 21 بسیارشون در راه الله کشو شدند حالا نوام بکنی برادر گرامی سوریه ما ادعای صد و نور نگاه کنید دقیقا عزیزان ملاحظه کنید سوره مائده آیه 109 اینجا اشاره میکنه میگه وقتی که اینها رو جمعشون میکنه همه پیغمبران رو همه دادگستران رو میگه وقتی که اینها رو جمعشون میکنه رسولان الهی رو اونایی که حالا به مرگ طبیعی مردن یا در الله کشته شدن اینجا داره میگیم وقتی که اینها رو گردشون میاره جمعشون میکنه در فردای قیامت اینا میگه چه مقدار مورد اجابت قرار گرفتید در جواب الله میدونه چی میگن برادر گرامی میگویند علمی برما نیست هماناتوی داننده قیب ها خب اینایی که در راه الله کشته شدن رسولان الهی درنام میگن آقا ما نمیدونیم که در دنیا چه اتفاقی افتاد آفانی میگن که اصلا را... یعنی بعد. با مرگ رابطه انسان با دنیای فانی قطع میشه قط میشه دقیقا قتع میشه در خود قرآن آیه داریم در, در سورهٔ ظمر آیه سی به رسول الله الله میفرماید تو میمیری آنها هم خواهند مرد باز من آیه از خود قرآن خدمت شما عرض میکنم برادر گرامی سوره عالعمران آیه پانزده عند ربهم باز در این آیه مشهود است الله میفرماید بگو آیا خبر دهم شما را به بهتر از این برای آنن که پریزکارند نزد پروردگارشان باقه است که روان است از ایران ها جوی ها در آن و زنانی پاک شده و خوشنودی باشد از سوی الله و الله بینا به حال بندگانه خب اینجا این آیات مشخص می برای ما که این این در بهم در کجاست برادر گرامی در سرای باقیست درسته. نه دنیای فانی درسته پس به این ترتیب کسانی که آیه 169 سوره آل امران رو به عنوان بهانه و دلیل می آوردن که پس امامای ما اماما نموردن و زنده اند و می توانیم اونها رو بخونیم پس می بینیم که این آیه اساسا هیچ مجوزی صادر نکرده جهت این مسئله دقیقا برادر گرامی ببینید برادر عزیز کسانی که جان خودشون رو در طبقه اخلاص میگذارند در راه الله قتال میکنند اینها جانشون رو جسد خودشون رو میدند تا حیات ابدی داشته باشند درسته ما اعتقاد به معاد داریم اعتقاد به روز قیامت داریم اعتقاد به سرای جاویدان سرای اخروی داریم دار وسلامی که خود و قرآن اشاره میکنه کجاست در فردوس برینه آیه رو آوردن در سوره آل عمران 21 داره میگه بسیاری از پیغمبران بسیاری از دادگستان هم شدن در سوره ماعد آیه صد و آیه رو بردیم باز داره میگه وقتی که اینها رو جمعش رو میکنی این رسولانی الاهیر همهشون رو میگن که ما نمیدونیم اطلاع ندارند میگه الله میفرمایید چه مقدار مورد اجابت قرار گفتیم میگن نمیدونیم این میفرمانیس. نیست حالا به نظر شما اون عزیزانی که بلند میشن هزار کیلومتر بلند میشه با زن و بچه زائر کربلا و نجف و سامرا و مشهد و قم میره به این نیت که اینها زنده هستن این امامان اینها صداشون میزنه و این تصور واهی براشون به وجود اومده که این امامان صداشون رو میشنوند و اجابتشون قرار میدن آقا این فعل حرامیه من جلسه نخست پیرامون این مسئله خاندن غیر الله آیاتی رو اووردم خدمت شما برادر گرامی سوره لغمان آیسی ببینید سوره لغمان آیسی رو ملاحظه کنید اینجا داره میگه هر کسی رو غیر از الله صدا بزنی باطله یعنی شما وقتی که داری میری زیارت قبور میگی یا علی مدد یا حسین یا فاطمه زهران یا شیخ قادر گیلانی آها این فعل از نظر قرآنی باطله اون کسی که در قبر آرمیده صدای شما رو نمیشنوه چون در خود قرآن در سوری احقاف آیات پنج و شیش زالترین گمراهترین انسان ها در پیشگاه الهی معرفی میشن اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودند که غیر الله رو صدا میزدند درسته, درسته. غیر الله رو صدا میزدند پس به این نتیجه می‌رسیم که اساساً آیه 169ه آل امران هیچ گونه مجوزی مبنی بر خواندن غیر الله صادر نکرده که هیچ بلکه فرموده که کسانی که در راه الله کشته شدند اینها پیش پروردگارشان نزد شون... پروردگارشان همونطور که شما فرمودید در دار و سلام همون جنت نعیمی که نصیبشون شده اونجا دارن روزی می‌گیرن دقیقاً نه کنار قبرشون که این افراد بلند میشن و میرن به زیارت این قبرهایی که پره خاک و استخونه دقیقا برادر گرامی این مسئله که من اشاره کردم من این استدعا رو از برادران و خواهران دینی و خودم دارم که قرآن رو مطالعه بکنی پرداختن به یک آیه و کتمان آیاتی دیگه این یعنی تحریف قرآن وقتی که به صورت موضوعی میخوایی وارد کلام قرآن بشی بایسی کلیه آیات مربوط به اون موضوع رو مدنظر قرار بدی روش و اسلوب و متدی که من اشاره کردم که خود اکاران مذهبی متولیان دین شرک و خراف پرسی و بدعت در طور تاریخ بشری اتخاص کردن این بوده برادر گرامی اینا میومدند، بخشی از آیه رو بخشی دیگر کتمان میکردن حق رو با باطل در می به حقیقت رو کتما میکردن یکسری یک سری سخنان لقب و یاوه در قالب لحب الحدیث ما میگیم سخنان لقب و یاوه و بیهوده در... در قالب اطرتی و سنتی درسته درست می ابدا می کردن اخترام کردن به قول معروف تاریخ مجعولم در کنارش در چاشنی این احادیث و روایات می بعد مردم رو از مسیر الله خارج میکردن بله مسیری که فرموده خالصانه فقط الله رو بخوانید. صد در فقط اگر فقط باعثی بگید یا الله اگر در کنار الله در جنب الله به جای الله هر کسی رو هر عنصری رو احدی رو صدا بزنی از نظر قرآن کریم این فعل حرامه باطله شرک، یعنی یکی از عواملی که باعث میشه که انسان وارد جهنم بشه همین کاری که ما داریم میکنیم همین کاری که داریم میکنیم میریم صدا میزنیم از قبور میخوایم حاجت بگیریم غیر الله رو صدا میزنیم برای مدد خواستن برای استعانت خواستن برای شفاعت خواستن ما... مستقیما با الله رابطه برقرار کنید درست می‌فهمید مسئله بی‌نهایت جدی همونطور که فرمودید شرک هم تنها گنای است که هرگز بخشیده نمیشه به واقع این توضیحات شما کمک کرد که ما این موضوع رو بیشتر متوجه بشیم و از شر این هم رها بشیم تشکر می کنم از شما خیلی زحمت کشیدید خیلی لطف کردید خسته نباشید امیدوارم که دوستان گرامی هم بتونن به طور فردی مستقل آیات قرانی رو بررسی بکنن و در عین حال نگاه جامعی هم به آیات قرانی داشته باشن تا به حقاید موضوع ان بیشتر پی ببرن ان تشکر می کنم از شما خسته نباشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام باش